بخش یک، محمد با آمریکا رود. من محمد هستم من 29 سال سن دارم من از شهر مشهد هستم من همیشه از کودکی علاقه من بودم که با فرهنگ های دیگر کشورها آشنا شوم به همین دلیل در سال 1389 شمسی تصمیم گرفتم برای ادامه تحصیل در مقطع فوق لیسانس در رشته مهندسی مکانیک به کشور مالزی سفر کنم خانواده من با این تصمیم کاملا موافق بودند به دلیل اینکه کشور مالزی از لحاظ فاصله مسافتی به ایران نزدیک است و دارای دانشگاه خوبی است من از زندگی و درس خواندن در مالزی بسیار لذت بردم بعد از اتمام دوره تحصیل به ایران برگشتم من از اینکه به ایران برگشتم و توانستم خانواده را ببینم بسیار خوشحال بودم اما هنوز دوست داشتم پله های ترقی را ته کنم و درسم را ادامه بدم به همین علت تصمیم گرفتم برای ادامه تحصیل در مقطع دکترا به کشور آمریکا سفر کنم